دوستان کتاب مقدس پر از داستان‌های بسیار جالب و ما امروز می‌خوایم در مورد قهرمانی بزرگ صحبت کنیم که با شجاعت قوم خودش رو نجات داد ملکه استر سرمشقی بزرگ برای همه ما که به خداوند اعتماد کنیم مخصوصاً در زمانها و شرایطی که بسیار مشکل هستند به دقت گوش کنید عزیزان شما هرگز این داستان رو فراموش نخواهید کرد. در عهد قدیم چهار نجات بزرگ برای قوم خدا رو میبینیم. اولین نجات توسط یوسف بود که قوم یهود رو از انقراز حتمی در قحطی و گرسنگی نجات داد. دومین نجات توسط موسی بود که اونها رو از ظلم و بردگی مصریان نجات داد. سومین نجات بازگشت از اسارت بابل بود. مردانی مثل ازرا و نهمیا رهبری اون رهایی رو به عهده داشتند کتاب استر چهارمین رهایی بزرگ قوم خدا رو برای ما شرح میده ما مطالعه های تاریخی رو با کتاب یوشع شروع کردیم و با کتاب استر به پایان میبریم کتاب روت و کتاب استر هر دو داستان زنانی هستند که با شخصیتی زیبا در کار خدا مشارکت داشتند کتاب روت درباره زنی غیر یهودی با ما صحبت میکنه که با مردی یهودی به نام بوعز ازدواج کرده اوبیت، پسر روت و بوعز پدر بزرگ داوود بود که اونها رو در شجر نامه ایسای مسیح قرار داد که در اولین باب کتاب مطا این رو میبینیم بنابراین روت نقشی اساسی در بزرگترین معجزه کتاب مقدس داشت به دنیا آمدن ایسای مسیح کتاب استر داستان زن یهودی رو به ما میگه که با مردی غیر یهودی ازدواج کرد استر یهودیان را از قتل عام نجات داد. استر شجر نامه ایسای مسیح را حفظ کرد که شامل روت و بوعز میشه. کسی که قرار بود مسیح از طریق او به این جهان بیاد. کتاب روت داستان زیبای عاشقانه ای هست. کتاب استر یک داستان غمانگیز هست. از کتاب استر میشه به عنوان یک سناریو استفاده کرد. یک نمایش نام نویس مبتکر می تونه نمایش زیبایی از داستان استر بسازه. من میخوام بررسی کتاب استر رو طوری انجام بدیم که گویی این کتاب به عنوان یک نمایشنامه تهیه شده. عنوان نمایشنامه میتونه این باشه، یک مهمانی پارسی. محل برگزاری این مهمانی امپراتوری فارس هست که شامل 127 ایالت پارس و مات هست. شخصیت اصلی این مهمانی ملکه ای هست که موقعیت خودش را از دست میده. اسم اون ملکه وشتی هست. و همسر او همون اخشورش هست. این مهمانی در حدود سال 482 قبل از میلاد برگزار شده. کتاب مقدس اون رو اینگونه گونه توصیف کرده. در سال سوم سلطنت، پادشاه زیافتی برای سروران و خادمان خود برپا نمود و حشمت فارس و مادی از امرها و سروران ولایتها به حضور او بودند پس مدت مدید 186 روز توانگری جلال سلطنت خیش و هشمت مجد و عظمت خود را جلوه میداد. پس بعد از انقضای آن روزها پادشاه برای همه کسانی که در سلطنه شوشن از خرد و بزرگی یافت شدن زیافت هفت روزه در عمارت باغ قصر پادشاه برپا نمود. و آشامیدن بر حسب قانون بود که کسی بر کسی تکلف نمی نمود. زیرا پادشاه درباره همه بزرگان خانهش چنین امر فرموده بود که هر کس موافق میل خود رفتار نماید و وشتی ملکه نیز زیافتی برای زنان خانه خسروی اخشورش پادشاه برپا نمود. در روز هفتم چون دل پادشاه از شراب خوش شد، هفت خاج سرا را که در حضور اخشورش پادشاه خدمت می امر فرمود که وشتی ملکه را با تاج ملوکانه به حضور پادشاه بیاورند تا زیبایی او را به خلایق و سروران نشان دهد. زیرا که نیکو بود اما وشتی ملکه نخواست که بیاید پس پادشاه بسیار خشمناک شده آنگاه پادشاه به حکیمانی که از زمانها مخبر بودن تکلم نموده گفت موافق شریعت به وشتی ملکه چه باید کرد چون که به فرمانی که اخشورش پادشاه به دست خاج سرایان فرستاده است عمل ننموده آنگاه مموکان به حضور پادشاه و سروران عرض کرد که وشتی ملکه نه تنها به پادشاه تقصیر نموده بلکه به همه رؤسا و جمیع توایفی که در تمامی ولایت‌های اخشرش پادشاه میباشند زیرا چون این عمل ملک نزد تمامی زنان شایع شود آنگاه شوهرانشان در نظر ایشان خار خواهند شد و در آن وقت خانم‌های فارس و مادی که این عمل ملک را بشنوند آنان نیز مثل او رفتار خواهند کرد و این مورد بسیار احتقار و غضب خواهد شد پس اگر پادشاه این را مسلحت داند فرمان ملوکانی از حضور وی صادر شود و در شرایع فارس و مادی ثبت گردد تا تبدیل نپذیرد که وشتی به حضور اخشورش پادشاه دیگر نیاید و پادشاه رتبه ملوکانه او را به دیگری که بهتر از او باشد بدهد و چون فرمانی که پادشاه صادر گرداند در تمامی مملکت عظیم او مسموع شود، آنگاه همه زنان شوهران خود را از بزرگ و کوچک احترام خواهند نمود. این سخن در نظر پادشاه و رؤسا پسند آمد و پادشاه موافق سخن مموکان عمل نمود. و مکتوبات به همه ولایت پادشاه به هر ولایت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش فرستاد تا هر مرد در خانه خود مسلط شود، و در زبان قوم خود آن را بخواند بعد از اینکه خشم پادشاه فروکش میکنه مشاورانش پیشنهاد میکنند که از سرتاسر سر ولایات دختران باکره کره نیکو منظر را به حرمسرای شاه بیاورند و آنها را آرایش کنند و هر کدام از آنها که مورد پسند شاه باشد به عنوان ملکه انتخاب شود و تاج ملکه را بر سر او بگذارند کتاب مقدس میگه که این سخن در نظر پادشاه پسند آمد و به همان ترتیب عمل نمود. در سرتاسر ایالات فارس و ماد تمامی دختران زیبا جماوری شدند و زیر دست هیجای قرار گرفتند. استر را نیز به خانه پادشاه، و زیر دست هیجای که محافظ زنان بود، آوردند. وقتی داستان‌های قدیمی رو میخونید، میفهمید که امپراتوران ایمانند اخشورش دو حرم داشتند. شاید تعجب کنید وقتی بفهمید پادشاهان باستانی صدها زن داشتند. سلیمان 700 زن و 300 سی زن سیغه‌ای داشت. شاید شما با خودتون فکر کنید شما نمیتونید از پس یک زن بر و تعجب میکنید چطور یک مرد میتونه هزار تا زن داشته باشه. روابطی که پادشاهان باستانی با همسرانشون داشتن مانند روابطی که امروز شما با همسرانتون دارید نبود. شاهان قدیمی دو حرم داشتند که میتونیم بهشون حرم آ و حرم بی بگیم این بسیار ظالمانه بود وقتی که زنان وارد حرم آ می شدند به اونها لباس های زیبا و آموزش های لازم داده میشد و این ماها طول میکشید و شاید هم یک سال و مهمترین شب زندگی اونها شبی بود که با سلطان سپری میکردند هر زنی باید یک شب با سلطان وقت می گذرند. او را فرا می خوندند و به او هر آنچه که از جواهرات و لباس های زیبا می خواست میدادند و در غروب شبی که قرار بود با شاه بماند به آپارتمان شاه برده میشد و صبح روز بعد به حرم بی منتقل می و باقی عمرش رو در حرم بی می گزراند. و شاید دیگه تا آخر عمرش هرگز شاه رو نمیدید مگر اینکه شاه از او خیلی خوشش می آمد و او رو به نام فرا می خوند. اکثر اوقات شاه انقدر مئ بود که حتی به خاطر نمی آورد که شب رو با چه کسی گذرونده از دیدگاه یک شاه، هدف از زندگی اون زن یک شب بودن در حضور شاه بود. همینطور که دیگر شخصیت ها رو در نمایشنامه نامه می بینیم، بهترین بازیگر مورد تأیید مردی به نام مردخای هست. یک یهودی که در موقع خرابی اورشلیم به عنوان اسیر به بابل رفت. مردخای دختر زیبایی به نام حدسه یا استر داشت که پدر و مادرش رو در قتل آمی اورشلیم از دست داده بود. مردخای اگرچه استر دختر بود. ولی او رو مانند دختر خودش تربیت کرده بود استر به طرز باور نکردنی زیبا بود بر اساس های یهودی مسنترین مرد خانواده سرپرست آن خانواده میشد از این رو دخترموی مردخای هر چیزی که او ازش میخواست انجام میداد. مردخای بدون شک وقتی استر را انتخاب کردند و به حرم آوردن ترسیده بود ما میخونیم که روزها پشت سر هم مردخای به حرم میومد. تا از احوال استر با خبر بشه. مطمئنم که مردخای کاملا نگران بوده. او به استر یاد داده بود که به کسی نگوید که یهودی هست. و استر از او اطاعت می کرد. همونطور که خواهیم دید، این مخفی کاری بخش مهمی از تمهیدات خدا در زندگی استر است. مخفی کاری مشیتی دیگری در این داستان زیبا می روزی مردخای در دروازه پادشاه نشسته بود و شنید که دو نفر از خارج سرایان پادشاه خست کشتن پادشاه را دارند مردخای این را به اطلاع استر رسانید و استر پادشاه را با خبر ساخت و به این ترتیب جان پادشاه را نجات داد و آن دو نفر را به دار این کارنی که مردخای در حضور پادشاه در کتاب تواریخ ایام ثبت شد به هر حال هرگز بر اون نوشته توجهی نشد و احتمالاً چون او یک یهودی بود هیچ پاداشی هم دریافت نکرد ما میبینیم که مخفی ماندن این قضیه بخش مهمی از مشیت الهی در زندگی استر هست. زمانی رسید که استر قرار شد شب رو با پادشاه بگذرونه. قدرتمندترین مرد جهان از استر بیش از بقیه دختران زیبایی که رقیب او بودند خوشش آمد. اخشورش تاج ملکه ماد و پارس رو بر سر استر گذاشت. یک دختر یهودی. حالا خدا یک زن جوان یهودی رو بر تخت امپراتوری جهانی فارس و مات قرار داده. سالها بعد ارتحشستا پسرخانده استر به نحمیا اجازه میده که برگرده و حسارهای شهر رو بنا کنه. شاید شما تعجب کنید که چرا امپراتور ارتحشستا با مهربانی ترتیب کارهای نحمیا رو داده؟ این به خاطر استر بود که به عنوان نامادریش احتمالا تأثیر بسزایی برو گذاشته بود. حالا در سومین پرده از صحنه اول نمایش نامه، ما مرد شریری رو میبینیم. صدر امپراتوری فارس و ماد مرد بسیار شریری به نام هامان هست. وقتی هامان هر روزه به طرف قصر میامد انتظار داشت که همه به او تعظیم کنند همه به هامان تعظیم میکردند به جز مردی که دوست ما هست و میتونیم بهش صدر خدا بگیم. و او کسی نیست جز مردخای. مردخای یهودی دینداری بود و فرمان کتاب مقدس او میگفت فقط خداوند خدای خودت رو بپرست. از این رو مردخای در مقابل هامان تعظیم نمی کرد. مردخای حاضر بود به خاطر وفاداریش به خدا هر تاوانی رو بپردازه. هامان به خاطر بیعتنایی مردخای کینه بزرگی از او به دل داشت و همواره به فکر این بود که به نوعی از او انتقام بگیره. هر وقت به این موضوع فکر می کرد احساس می کرد که در مقابل مردخای تحقیر می شه و این سبب می شد که آتش خشم و کینه هر روز در دل او شعله ورتر بشه. هامان سربازانی نزد مردخای فرستاد تا از او توضیح بخواهد. وقتی سربازان برگشتند به هامان گفتند که به خاطر مذهبش هست که تو را تعظیم نمی کند او مردی یهودی هست. اون شب هامان نزد پادشاه رفت و از او خواست که قانونی را وضع کند که در سرزمین ماد و تغییر نکند. قانون این بود که در 28 ماه فوریه سال آینده هر یهودی که در روی زمین بود باید کشته میشد. هامان نه تنها میخواست که مردهایی را بکشه، بلکه میخواست که تمامی یهودیان روی زمین را رو هم بکشه. هامان و پادشاه قرآن انداختند و روز 28 فوریه رو برای شروع قتل عام یهودیان تعیین کردند. این روز در تاریخ قوم یهود به عنوان جشن پوریم امروزه هم برگزار میشه. ما میخونیم که وقتی مردخواه این رو فهمید جامعه خود را دریده پلاس با خاکستر دربر کرد به میان شهر بیرون رفته و آواز بلند فریاد تلخ برآورد به خاطر تصمیمی که مردخواه گرفته بود که در مقابل هامان تعظیم نکند تمامی یهودیان روی زمین باید قتل آم میشدن. در سرتاسر 127 ایالت ماد و پارس دنیای شناخته شده اون روز از جمله اسرائیل تمامی یهودیان ازادار شدند. روزه گرفتند، گریه کردند و با ناامیدی پلاس و خاکستر دربر کردند. مردخای خشمناک سعی کرد که با استر تماس بگیره. او برای استر پیغامی میفرستاد و حکم پادشاه را برای او بازگو کرد. مردخای از استر خواست که برای تمامی یهودیان در مقابل پادشاه شفاعت کنه. استر در پاسخش برای مردخای چنین نوشت که جمی خادمان پادشاه و ساکنان ولایت‌های پادشاه می‌دانند که به جهت هر کس، خواه مرد و خواه زن، که نزد پادشاه به صحن اندرونی بی ازن داخل شود، فقط یک حکم است که کشته شود مگر آنکه پادشاه چوگان زردین را به سوی او دراز کند تا زنده بماند. و سی روز است که من خوانده نشدم که به حضور پادشاه داخل شوم. مردخای جواب زیبایی برای استر نوشت. مردخای برای او نوشت در دل خود فکر مکن که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 و برای من روزه گرفته سه شبان روز چیزی مخورید و میا آشامید و من نیز با کنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت. و به همینطور نزد پادشاه داخل خواهم شد. اگرچه خلاف حکم است. و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. پس مردخوای رفته، موافق هرچه استر وی را وسیعت کرده بود عمل نمود. من فکر میکنم که این کلمات بزرگی استر رو به ما نشون میدن. سالها پیش مردی در رودزیا بود که از او خواسته شد اولین نخست وزیر سیاه پوست رودزیا بشه. و برایله قوانینی که بر ضد سیاهان بود مبارزه کنه. او میدونست که هر کسی که قصد کرده بود با اون قوانین مخالفت کنه کشته شده بود تبعید شده بود و یا به کمپ اسرا فرستاده شده بود. او نمیخواست که این چیزها رو تجربه کنه و نمیخواست خانوادهش این چیزها رو تجربه کنند. او برای مسئله نخست وزیر شدن در رودزیا طوری دعا میکرد که قبلا چنین دعایی نکرده بود. او تصمیم گرفت اون مسئولیت رو با تمام عواقبش بپذیره. همون کاری که استر کرده بود. به عبارتی تصمیم گرفت و گفت اگر هلاک شدم هلاک شدم. بعدهایی یکی از دوستانش از او خواست که بگه انگیزش برای گرفتن این تصمیم چی بود. آبل مسارلا که نخست وزیر سیاه پوست رود رودزییا شده بود گفت وقتی برای این تصمیم دعا کردم شعری از دوستی به دستم رسید و اون شعر انگیزه من برای گرفتن این تصمیم بود عنوان شعر این بود به هر حال این کار رو بکن مضمون شعر چنین چیزی بود مردم زورگو، غیرمنطقی و خودخواه هستند به هر حال اونها رو دوست داشته باش اگر کار خوبی انجام بدی مردم تو رو به خودخواهی و انگیزه های پنهانی متهم می کنند اما به هر حال کار خوب انجام بده. اگر موفق بشی دوستانی خواهی داشت دوستانی ظاهری و دشمنانی حقیقی، اما به هر حال موفق شو. نیکویی که امروز بکنی، فردا فراموش خواهد شد، ولی به هر حال نیکویی کن. صداقت و رکویی تو را آسیب پذیر خواهد کرد، اما تو صادق و رکو باش. بزرگترین اشخاص با بزرگترین افکار میتونن توسط کوچکترین اشخاص با پایینترین افکار از پا در بیاند. به هر حال بزرگندیش باش. این شعر زیبایی هست و ادامه داره و مضمون نشینه که به هر حال انجام بده. اون شعر آب الماسار را واداش که تعهد بسیار بسیار ارزشمندی نسبت به قومش داشته باشه. استر هم چون این فداکاری و از خودگذشتگی از خود نشون داد که بزرگی او رو نشون داد. اگر ما خدا رو دوست داریم و بر اساس خواسته‌ی او فرا خوانده میتونیم وعده مشیت الهی رو بطلبیم. همون که رومیان 8 28 به ما میگه می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارن و به حسب اراده او خانده شدن همه ی چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشن. همونطور که می بینیم در تجربیات زندگی استر این مورد برای ما به تصویر کشیده شده وقتی استر به حضور شاه رفت او نه تنها اس سلطنتی رو به سمت استر گرفت بلکه اسای سلطنتی رو به استر داد او به استر وعده داد که حتی اگر نیمی از پادشاهیش را بخواد به او عطا خواهد کرد باید فکر کنیم که استر عجب زن زیبایی بوده سالها پیش بعد از اینکه تعلیم کتاب استر رو تموم کرده بودم کسی از من پرسید تا حالا هیچ نقاشی چهره استر رو نقاشی کرده ظاهرا استر باید زن بسیار زیبایی بوده باشه که چنان تأثیری بر بزرگترین حاکم دنیا داشته وقتی امپراتور چوگانش رو دراز کرد و پرسید استر چی میخوای؟ استر گفت اگر به نظر پادشاه پسند آید پادشاه با هامان امروز به زیافتی که برای او محیا کرده ام بیاید. استر بسیار باهوش بود. میدونست که برای گفتن چیزی خاص زمان و مکانی هست. چون اخشورش استر رو خیلی دوست داشت پاسخ داد با کمال میل خواهم آمد و کسانی رو دنبال هامان فرستاد و به او گفتند که برای زیافتی در حضور ملکه و پادشاه دعوت شدی. هامان بسیار خوشحال بود. او میره خونه و به دوستانش فخ میفروشه و بهشون میگه آیا خبر دارید که من برای شام خوردن با امپراتور و ملکه دعوت شدم؟ فقط ما تایی، امپراتور، ملکه و من. کتاب مقدس میگه پادشاه و هامان به زیافتی که استر بر نموده بود آمدن و پادشاه در مجلس شراب به استر گفت مسئول تو چیز که به تو داده خواهد شد و درخواست تو کدام؟ اگرچه نصف مملکت باشد برآورده خواهد شد. استر در جواب میگه مسئول و درخواست من این است که اگر در نظر پادشاه یافتم. و اگر پادشاه مسلحت داند که مسئول مرا عطا فرماید و درخواست مرا بجا آورد پادشاه و هامان به ضیافتی که به جهت ایشان مهیا می کنن بیایند و فردا امر پادشاه را بجا خواهم آورد در موقع بازگشت هامان مردخای رو میبینه که باز هم به حضور او تعظیم نمیکنه. اما هامان بی توجه به خانه خود میره و دوستان خودش و زنش رو دعوت میکنه و موقعیتی رو که در حضور شاه پیدا کرده به اونها شرح میده کتاب مقدس میگه ما همه این چیزها نزد او هیچ بود چون که هامان او رو تعظیم نمیکرد. برای اینکه هامان بر خشمش غلبه کنه زنش و دوستانش به او پیشنهاد میکنند که داری به بلندی 50 ذره بسازه و بام دادن از پادشاه بخواد که مردخای رو بر اون مسلوب کنن خب تمام اون شب رو هامان با برپا کردن اون دار خشم خودش رو آرام کرد در اینجا مشیت الهی به عنوان زمینه اصلی کتاب استر آشکار میشه اون شب پادشاه نمیتونه بخوابه پس از کسی میخواد که بیاد و تواریخ ایام رو برای او بخونه تا خوابش بگیره در حالی که اونها تواریخ رو میخوندند اتفاقا به قسمتی رسیدند که مردخای از قتل پادشاه جلوگیری کرده بود پادشاه خواندن کتاب رو متوقف میکنه و میپرسه آیا ما کاری برای مردخای انجام دادیم جواب میدند که نه پادشاه میگه خب من میخوام کاری برای مردخای بکنم کم کم داشت هوا روشن شد. شاه می پرسه آیا کسی برای گزارش کار اومده خادمین پادشاه جواب میدن که کسی غیر از هامان نیومده پادشاه میگه او رو داخل بفرستید هامان وارد میشه و شاه میگه هامان میخوام ازت سوالی بپرسم اگر تو امپراتور بودی و کسی در امپراتوری تو بود که میخواستی او رو تکریم کنی چطور او رو تکریم می کردی؟ هامان پیش خودش فکر میکنه که چه کسی غیر از من رو میخواد تکریم کنه پس به پادشاه جواب میده برای شخصی که پادشاه به تکریم نمودن او رقبت دارد لباس ملوکانه را که پادشاه می پوشد و اسبی را که پادشاه بر آن سوار می شود و تاج ای را که بر سر او نهاده می شود بیاورند و لباس و اسب را به دست یکی از عمرای مقرب پادشاه بدهند و آن را به شخصی که پادشاه به تکریم نمودن او رقبت دارد بپوشانند و بر اسب سوار کرده و در کوچه های شهر بگردانند و پیش روی او ندا کنند که با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رقبت دارد چنین خواهد شد. آنگاه پادشاه به هامان فرمود آن لباس و اسب را چنان که گفتی به تعجیل بگیر و با مردخای یهود که در دروازه پادشاه نشسته است چنین معمول دار و از هر چه گفتی چیزی کم نشود. از هامان آن لباس و اسب را گرفت و مردخای را پوشانیده و او را سوار کرده در کوچه های شهر گردانید. و پیش روی او ندا می کرد با کسی که پادشاه به تکریم نمودن او رقبت دارد چنین کرده خواهد شد هامان شریر مجبور شد مدتها قبل از اینکه ایسا قانون طلایی خود رو تعلیم بده اون رو یاد بگیره با دیگران چنان کن که میخواهی با تو بکنن هامان از فرمان شاه اطاعت کرد حقارت او رو تجسم کنید وقتی که میرفت برای مهمانی شام استر لباسش را عوض کنه هامان نه تنها تحقیر شده بود بلکه زخمی هم بود چون که او شاه رو به هیله فریب داده بود که فرمانی صادر کنه تا همه یهودیان کشته بشن اقوام مردخای قرار بود کشته بشن هامان هنوز خبر نداشت که ملکه از اقوام مردخای است و او هم یهودی است من فکر می کنم بهترین عنوانی که برای این نمایش نامه کتاب استر میتونیم انتخاب کنیم اینه حدس بزن چه کسی برای شام میآیه ما باید بتونیم تصور کنیم که هامان از دومین مهمانی شام مجللی که استر ترتیب داده چندان لذتی نمیبره وقتی که نوبت نوشیدن شراب در مهمانی شد شاه دوباره از استر ملکه پرسید خواسته ی تو چیست که به تو داده خواهد شد حتی اگر نصف پادشاهی مرا بخواهی به تو خواهم داد استر ملکه جواب داد و گفت ای پادشاه اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر پادشاه را پسند آید جان من به مسئول من و قوم من به درخواست من به من بخشیده شود زیرا که من و قومم فروخته شده ایم که حلاک و نابود و تلف شویم و اگر به قلامی و کنیزی فروخته می شدیم سکوت می نمودم. با آنکه مصیبت ما نسبت به زرر پادشاه هیچ است آنگاه اخشورش پادشاه استر ملکه را خطاب کرده گفت آن کیست و کجاست که جسارت نموده است تا چنین عمل نماید استر گفت دشمن من همین هامان شریر است آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملکه بلرزه درآمد و پادشاه غضبناک شده از مجلس شراب برخاست به باغ قصر رفت و چون هامان دید که بلا از جانب پادشاه برایش مهیاست برپا شد تا نزد استر ملکه برای جان خود تذرر نماید و چون پادشاه از باغ قصر به جای مجلس شراب برگشت هامان بر بستری که استر بر آن میبود افتاده بود پس پادشاه گفت آیا ملکه را نیز به حضور من در خانه بیاسمت می کند؟ سخن هنوز بر زبان پادشاه می بود که روی هامان را پوشانیدن. آنگاه هربونا یکی از خاج سرایانی که در حضور پادشاه می بودند گفت اینک دار پنجاه زرایی که هامان آن را به جهت مردخای که آن سخن نیکو را برای پادشاه گفته است محیان موده در خانه هامان حاضر است. پادشاه فرمود که او را بران مصلوب سازید پس هامان را برداری که برای مردهخای محیا کرده بود مصلوب ساختند و غضب پادشاه است. در حالی که هامان را برای اعدام می‌بردند او مجبور شد نسخه منفی قانون طلایی عیسا را هم یاد بگیره. هرگز کاری رو که دوست نداری دیگران با تو بکنند با کسی نکن یهودیانی که در فارس زندگی می‌کردند هنوز مشکل داشتند چون که قانونی وضع شده بود که طی اون باید از 28 فوریه به بعد هر یهودی باید در امپراتوری فارس و ماد می می‌مرد و این قانون غیرقابل تغییر بود. پس یهودیان چیکار باید می‌کردند؟ همه چیز به خوبی پیش میره. شاه شغل هامان رو به عنوان نخست وزیر فارس به مردخای می میده و تمامی اموال و ثروت او به عنوان میراث به مردخای می میرسه. اما برای حل مشکل قتل عام مردخای به عنوان نخص وزیر رو ملکه به حضور شاه رسیدن. اونها مشکل رو با پادشاه در میون گذاشتند و از اون نظر خواستند. اونها با همدیگه مشورت کردند و تصمیم گرفتن قانون دومی صادر کنند که قانون اول رو باطل می کن. به جای قانون کشتار تمامی یهودیان در 28 فوریه اونها قانون جدیدی تصویب کردند. طبق قانون دوم پادشاه به تمامی یهودیان که در ولایات پارساکن بودن اجازه داد که به جهت جانهای خود مقاومت نماین و تمامی قوت قومها و ولایات را که قصد ایشان می با اطفال و زنان ایشان هلاک سازن بکشند و تلف نماین و اموال ایشان را تاراج نماین اونها برای رساندن این قانون به شهرها فقط شش ماه فرصت داشتند. اونها هواپیماهای جت و تلویزیون و رادیو و اینترنت نداشتند. اونها فقط چاپارهای تندرو از اسب و شطور داشتند اما میدونید چیه اونها موفق شدن این قانون رو برای نجات یهودیان به موقع به همه جا برسونند در عرض شش ماه پیک ها با خبرهای خوش به همه جا رسیدن این یک قانون حیات برای همه شما یهودیان است که تحت قانون مرگ بودید اون قانون حیات زندگی تمام یهودیان دنیا رو نجات داد کاربرد عملی کتاب زیبایی استر چیه یکی از کاربردهاش اینه. دو هزار سال پیش عیسی مسیح به نوعی به ما گفته تمامی جهان زیر حکم مرگ است اما من به وسیله شما حکم حیات می دهم. این حکم حیات را بگیرید و به تمامی جهان ببرید که زیر حکم مرگ است و اونها از مرگ روحانی ابدیشون نجات خواهند یافت. عیسی دو هزار سال پیش این ماموریت رو به ما داده. در دو هزار سال گذشته ما موفق نبودیم. هنوز میلیون ها نفر هستند که زیر حکم مرگ روحانی قرار دارند که هرگز حکمی را که با آنها حیات ابدی می دهد، نشنیدند. اینجا یک سؤال اساسی مطرح میشه؟ چطور در ایام استر اونها می تونستند فرزن در عرض شش ماه به تمامی دنیا دسترسی پیدا کنند؟ آیا به این دلیل نبود که حاملان پیام دوم به هر دوی اون احکام ایمان داشتند؟ این حاملان پیام میدونستند دونستند که فرمان اول پارسی ها فرمان مرک است. اونها باور داشتند که همه اون یهودی خواهند بود. این حاملان پیام باور داشتند که اونها پیامی رو در دست دارند که حکم زندگی برای یهودیان محکوم شده است. اون حاملان پیام حقیقتاً به اون پیام ایمان داشتند. بنابراین اون حاملان پیام در طول شش ماه پیغام حکم زندگی رو به تمامی دنیا میرسونن. چرا ما پیام حیات خودمون رو انجیل عیسای مسیح را به تمامی دنیا نمیرسونیم. آیا به این دلیل نیست که ما به هر دوی اون پیغام‌های ایمان نداریم؟ آیا به این دلیل نیست که واقعا ایمان نداریم که مردم دنیا زیر حکم مرگ قرار دارند؟ آیا به این دلیل نیست که ما به حقیقت بودن حکم دوم باور نداریم؟ آیا به این دلیل نیست که ما باور نداریم حکم حیات رو در دستانمون داریم؟ سالها پیش وقتی که مجازات اعدام به طور تارگوسترده اعمال میشد از شبان جوانی خواستند که با مرد جوانی که محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی شده بود دعا کنه شبان به مرد محکوم انجیل رو بشارت داد و مرد جوان به شبان پاسخ داد آیا واقعا به این ایمان داری شبان جواب داد بله من به اون ایمان دارم مرد محکوم پرسید چرا تا حالا کسی اینو به من نگفته بود اگر من به این ایمان داشتم که آنچه تو به من گفتی حقیقت دارد تمامی کشورم رو سینه خیز میرفتم و این پیغام رو که تو به من دادی به همه مردم می دادم من و شما باید از خودمون بپرسیم آیا واقعا به انجیل ایمان داریم؟ آیا ایمان داریم که دنیا زیر حکم مرگه؟ آیا ایمان داریم که انجیل عیسی مسیح حکم حیات هست؟ اگر حقیقتا به هر دوی این حکم ایمان داریم ما باید کاملا متعهد به پخش انجیل در سراسر دنیا باشیم به نظر من دلیلی که چرا دو هزار سال کلیسان نتونسته حکم زندگی رو به تمامی دنیا برسونه باید این باشه که ما به انجیل واقعا ایمان نداریم من فکر کنم حداقل یک کاربرد کتاب استر میتونه مربوط به بشارت در دنیا باشه کاربرد زیبای دیگر کتاب استر اینه که اون انجام عهد خدا با ابراهیم رو به تصویر میکشه. خدا به ابراهیم وعده داد برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند و از تو جامعه قبایل جهان برکت خواهند یافت ما یقینا میبینیم که عهد خدا در کتاب استر ثابت شده کاربرد دیگری در کتاب استر هست که میتونه این باشه که اون قانون طلایی رو به صورت وارونه نشون میده زندگی و مرگ هامان نمونه منفی از قانون طلایی عیسی هست. این قانون منفی طلایی در دیگر مذاهب هم دیده میشه هرگز کاری رو که دوست نداری با تو بکنن با کسی نکن این حقیقت جایی نشون داده میشه که هامان در داری که برای مرده ساخته به دار کشیده میشه به این فکر کنید که دوست دارید مردم با شما چیکار کنند و بعد همون کار رو برای اونها بکنید اگرچه این خواسته هامان نبود وقتی که شاه به او فرمان داد که مرده رو تکریم کنن این واقعه برای او پیش آمد کاربرد مهم دیگر استر پیغامی از مشیت خداست. این رو در داستان یوسف هم دیدیم. رومیان هشت بیست میگه میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارن و بر حسب اراده او خانده همه همیه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشن. او نمیگه بعضی چیزها، خیلی چیزها یا اکثر چیزها بلکه میگه همه چیزها. همه چیزها با همدیگه برای نیکوی شما به کار گرفته میشه. اگر خدا رو دوست داشته باشید و بر حسب اراده او خوانده شده باشید میبینیم که این آیه در زندگی یوسف، دانیال و استر عملا نشون داده شده وقتی استر رو برای رفتن به حرم شاه نامزد کردن آیا خدا مرده بود آیا خدا زندگی استر رو کنترل نمی‌کرد خدا داشت یک دختر یهودی رو در تخت امپراتوری ماد و پارس قرار می‌داد وقتی که قوم خدا پیروز شدند وقتی اونها درمانده بودند و نمیتونستند در مورد شرایطی که برای استر پیش آمده بود کاری بکنن خدا در کار بود. مشیت خدا در شرایط زندگی من و شما یکی از مهمترین پیام‌های کتاب استر هست. آیا ایمان دارید که خدا در شرایط زندگی شما حاکم هست؟ البته این همیشه حقیقت نداره اگه شما خدا رو دوست نداشته باشید و نخواهید که هیچ چیزی رو بر طبق نقشه و اراده او انجام بدید، اگه برید و هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید نمیتونید بگید همه چیزها با هم برای خیریت در کار هست. شرایط خیلی مهمی برای تحقق این وعده وجود داره. اگر خدا رو با تمامی دل، فکر و روح و قوتتون محبت کنید. اگر با تمام وجودتون بر حسب اراده او فرا خوانده شدید، وقتی این دو شرط تحقق پیدا کردند، اون وقت هر چی که براتون پیش بیاد برای خیریت شما خواهد بود. من دیدم که این حقیقت در زندگی من کار کرده. اگر برای زندگیتون دعا کنید می بینید که این حقیقت بارها در زندگی شما کار میکنه. یک کاربرد مهم دیگر در کتاب استر همونطور که قبلا هم اشاره کردم مربوط به بشارت جهانی هست. اون دو حکم که توسط حاملان پیام به تمام دنیا رسانده شد نمونه خوبی برای ما هستند. من معتقدم خادمینی که در گوشه های پرت دنیا خدمت میکنن ایمان دارند مردم اون مناطق زیر حکم مرک هستند. اونها باور دارن حکم حیات در دستان اونهاست به این دلیل هست که اونها با فراخانی روح القدس اونجا میرن و با قوت روح القدس در اونجا میمونن و با روح القدس هدایت میشن این چیزیه که انگیزه اون خادمین برای رفتن و ماندن در اونجا هست میخوام شما رو به چالش بکشم آیا به انجیل ایمان داری آیا حکم مرگ رو باور میکنید آیا باور دارید که حکم حیات در دستان شماست من معتقدم که این هیوم اساسی کتاب استر است. خداوند ما عیسی مسیح معموریت بزرگی به ما داده. وقتی عیسی بعد از قیامش به آسمان سعود کرد، به پیروانش گفت: "پس رفته، همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید. ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند." باینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم کسی به شما بشارت داده و کسانی هستند که شاید هرگز درباره پیام حیات چیزی نشنیدن. پیام حیات به شما سپرده شده این هفته اون رو با کسی در میون بذارین. امیدواریم که این درس ها ایمان شما رو تقویت کنه و شما رو تشویق کنه تا در انتشار کلام خدا و بشارت انجیل جسورتر باشین و پیام حیات رو به کسانی که زیر حکم مرکستن برسونین. از خداوند برای حکم حیاتی که با فیزش به ما بخشیده متشکریم تا برنامه بعدی شما را به خداوند عیسی مسیح می سپارین.